آدمی خیلی باهوش گفت حتما میخوان باهات ملاقات کنن میخوان تو رو ببینن دعوتت کردهن خونهشون گفتم واسه چی من که اونارو رو نمیشناسم بله اما اونقدر ازت تعریف کردیم اونقدر از هوش و ذکاوتت گفتیم که همه شیفته تو شده چی بدش میاید با باهوش باشه علاوه بر این به دیگران هم طوری معرفیش کنن انگار با ترین آدم روی زمین است با این حال مثل آدم هایی که ته دارند و وقتی بهشان می میگویند یک دهن آواز بخوانند ناز میکنند من هم ادای آدم های متواضع را درآوردم و گفتم نه بابا این حرفا چیه من کجا و هوش کجا اما آخر سر به آپارتمان خانواده ای رفتیم که دور آدور شیفته هوش عالی هم شده بودن. خانواده عبارت بود از پدر و مادر، دو دختر جوان و یک پسر نوجوان. تا از در وارد شدیم، همه چشم‌ها به من دوخته شد. طوری نگاهم میکردند انگار مخلوق عجیبی را می‌بینند که از فرق سر تا نوک پا فقط هوش است و دیگر هیچ. حالا روز من مثل دانش آموز تنبلی بود که درس نخوانده وارد جلسه امتحان شده. پدر خانواده گفت: "آخ ما همه خونوادگی شیفته هوش فوق‌العاده شما هستیم. خودتان درک کنید که چقدر حیرت کرده بودم. گفتم: نه بابا راست میگید؟ خیلی خوب. خیلی خوب. مادر خانواده گفت: همه دوستامون که شما رو میشناسن، هوشتون رو در همان موقع دختر بزرگ خانواده از فرت هیجان دستهایش را به هم میمالی. کسان دیگری هم که شنیده بودند، هوش بزرگ به خانه دعوت شده از راه رسیدند. همگی چنان نگاهم میکردند، انگار در باغ وحش دارن حیوان کمیاب و عجیبی را تماشا میکنند. بایست چیکار می میکردم؟ به هر حال به اینها گفته بودند من هوش ای دارم. مثل کالایی که با آگهی در کیفیتش قلف شده میترسیدم آبروریزی کنم و گاف بدهم. می ترسیدم بگویند این یارو گاگوله بود همون که میگفتن هوش برتر داره با خودم گفتم بهتر است مثل همیشه ساکت گوشه‌ای بنشینم یا اینکه در هر موضوعی دخالت بکنم و اجازه حرف زدم به کسی دیگری ندهم بهتر است با شوخی و مزه پرانی دورو بری‌ها را از خنده بر کنم یا اینکه با قاشق از دهانم حرف بیرون بکشند خودم را سنگین و رنگین نشان بدهم همینجور عرق می رختم. شده بودم خیس عرق به هر حال مجبور بودم کاری بکنم و خودم را با هوش جلوه بدهم اما طبق معمول که همیشه کارها برعکس می شود آن روز هم بلاحتم هم گول کرده جایی جای پیدا نمیکردم دستم را بگذارم صورتم کش می آمد دندان هایم بزرگ می شد گوش هایم دراز می شد انگار یک کله علاق آورده بودند روی گردنم نصب کرده بودند تف به این شانس همه می گفتند و می خندیدم. من اگر لالمونی گرفته بودم. آن همه لطیفه بلدم هیچ کدام به خاطرم نمی آمد. با خودم گفتم بعدم پشت سرم کلی صفحه می گذارد. پاک آب رویم رفت. صاحبخانه پرسید؟ نظر شما چیه جناب؟ پیدا بود منتظر است. اوش سرشارم با تلعلای خیره کنندهش خود نمایی کند. اما من چون نمیدانستم دانستم چه موضوعی دارم صحبت می کنند، گفتم. کی؟ من؟ چیز یعنی درباره این مسئله من البته که با نظر شما موافقم همه غهغه کنان خندیدند کم مانده بود گریم بگیرند سرم را بلند کردم و به سخف خیره شدم یک دفعه انگار خرپس کلم را گاز گرفت گفتم یه لطیفه هست لطیفه متیفه در کار نبود همینجور انداخته بود این لطیفه دیگر از کجا پیدایش شد؟ همگی طوری به شش هشت دوخته بودند که انگار الان است که تخم دو زرده بگذارم. همه این لطیفه رو میدونید. یه روز مولو نسردین... توفی شانس. حتی یک لطیفه ی مولو هم به یادم نمیاد. دستش درد نکند خانم خانه. بفرما زد برای شام. با آنکه میخواستم پشت سر همه بمانم اولین نفری که به طرف میز دوید من بودم انگار جای دهانم را هم گم کرده بودم قاشق قاشق سوپ را روی لباسم میریختم به عوض که بگویم دستتون درد نکنه خیلی خوشمزه شده به خانم خانه که خیلی هم با نزاکت بود گفتم اه اه چقدر شور شده دختر کوچک خانواده توی باشقابم گوشت میگذارد میخواهم بگویم تشكر میکنم کافیه اما میگویم اینکه کمه پرش گنبشخابم انگار آدم دیگری توی جلدم رفته به جوانی که رو به نشسته میگویم جوون قمار کار خیلی بدیه اما انگار تو جوان میگوید من تو عمرم دست به قمار نزدم اما من که فرصت پیدا کردم هوش برترم را نشان بدهم در جوابش میگویم برو سر باباتو و شیره به جوجه دیگه همه به حرفهای من گوش میدهند مثل گرامافونی که فنرش در رفته مدام حرف میزنم به صاحب خانه که مرد محترمی هم هست میگویم دخترتون راست راستی دختره؟ مرد بیچاره این سؤالم که انگار یک دفعه بر سرش هوار شده تتفت کنان با شرمندگی جواب میدهد هنوز ازدواج نکرده شما به این چیزا کار نداشته باشین یه دفعه ببرین پیش دکتر معاینش کنه حتی پیشنهاد می هر هفته ببرینش پیش دکتر چون که از طرز نگاه دخترتون خوشم نیومد بعد از شام به اتاق پذیرایی رفتیم و قهوه آوردن. سعی میکنم ترمزم را بکشم و جلوی زبانم را بگیرم. اما نمیتوانم. آقا، حقوق شما چقدره؟ 740 لیره. اه. این همه هزینه، سه تا بچه. ها؟ بگو ببینم، با این حقوق چجوری خرج اینا رو میدی؟ نکنه رشوه میگیری، ها؟ اگر با اردنگی از آنجا بیرونم میکردم خوشحال می شدم. دیگر مهمان ها می موضوع صحبت را عوض کنن اما من ولکن معامله نبودم. این بچه ها اصلاً به تو نمیرم. به صورت شیفتگان هوش برترم نگاه کردم. کسی جیک کش در نمیاد با شدم با صدای بلند فریاد زدم. من احمقم نه این چه حرفیه؟ ما تعریف هوش شما رو من مجسمه بلاهتم شروع کردم به صحبت عجب حوش فوقلادهی از چشماش آتیش می‌باره، طاقت نیاوردم بابا از من علاختر کسی نیست گفتند داره با زبون تنز و از آدمها را به زبون میاره دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم رفتم بالای میز و شروع کردم به ار ار کردن بعد هم در را باز کردم و خودم را توی کوچه انداختم انگار شنیدم که پشت سرم میگفتند هوش بیمانند تا الان چه آدم با باهوشی ندیده بودم از بس هوشش زیاده زده به سرش راستش هوش و دیوونگی دو یه سکه. اما ببین چه شوخیایی میکنه چه لطیفههایی تعریف میکنه معدن هوش